حقیقت با رفتن به فراسوی تزادها و قطبهای ساخته و پرداختهی ذهن شبیه دریاچه ژرف جرف می شوی. وضعیت بیرونی زندگی تو و آنچه در آن چه دران رخ می‌دهد سطح این دریاچه خواهد بود سطح این دریاچه بسته به چرخه‌ها و فصل‌ها گاهی آرام است گاهی مواج و طوفانی اما در آن ژرفاها دریاچه همیشه آرام و بی‌تلاطم است تو همه این دریاچه هستی نه فقط سطح تو با جرفای خود نیز در ارتباط هستی جرفایی که هم بار آرام و بی است. تو با چنگ زدن به وضعیتی خاص مانع دگرگونی نمی شوی. آرامش درونی تو وابسته به وضعیتی خاص نیست. تو ساکن خدا هستی. خدای بی تغییر، بی زمان، جاودانه و زنده بنابراین برای خوشبختی یا کامیابی به دنیای همبار در تغییر صورتها نمی آویزی تو از این صورتها لذت میبری با آنها بازی میکنی کنی صورتهایی تازه می آفرینی زیباییشان را تحسین میکنی اما نیازی نیست که خود را وابسته این صورتها کنی وقتی وابستگی خود را رها میکنیم و وارسته میشویم آیا از آدم دیگر جدا نمی برعکس تا زمانی که هنوز نسبت به هستی آگاه نشده ای واقعیت آدم دیگر را نمی زیرا هنوز واقعیت خود را ندیده ذهن تو ممکن است از صورت آنها خوشش بیاید یا نیاید صورتی که فقط بدن آنها نیست بلکه ذهن آنها را نیز شامل می شود رابطه ی حقیقی فقط زمانی هست که آگاهی نسبت به هستی، وجود یا خدا باشد. وقتی واقعیت یگانه با همه چیز و همه کس خود را پیدا کردی، آنگاه خواهی دید که ذهن و بدن آدم ها فقط پرده‌ای است که واقعیت آنها را میپوشاند. همان واقعیتی که تو نیز از آن برخوردار هستی. بدین سان هنگامی که با درد و رنج و یا رفتار ناآگاهانه کسی مواجه میشوی، اتصال خود را با خدا حفظ می و بدین وسیله قادر خواهی بود که در فراسوی صورت و احساس آن کس، ذات نورانی او را در آینه جان خود بتابانی. در ساحت خدا، همه درد و رنج ها به خیالی تبدیل می شود. درد و رنج، حاصل یکی انگاری خود، با صورت هاست معجزه شفا هنگامی رخ میدهد که ما این حقیقت را بفهمیم و فطرت الهی دیگران را بیدار کنیم اگر مستعد باشند آیا این همان شفقت است آری شفقت تجربه اتحادی است که بین تو و همه مخلوقات عالم برقرار است اما این اتحاد یعنی شفقت دو وجه دارد از یک سو چون تو هنوز اینجا هستی و دارای بدن و شکل هستی همچون همه آدمهای دیگر و همه موجودات زندگی دیگر در معرض شکنندگی و مرگومیر هستی. دفعه دیگر هنگامی که می گویی من هیچ وجه مشترکی به این آدم ندارم از یاد نبر که تو وجوه مشترکی با او داری چند سال دیگر دو سال یا هفتاد سال فرقی نمی کند هر دوی شما اجسادی هستید متلاشی شده انگاه مشتی خاک و سپس هیچ این حقیقتی است تامل برانگیز که جایی برای قرور باقی نمیگذارد آیا فهم این موضوع فکری منفی است نه این موضوع واقعیت است چرا میخواهی چشمان خود را بر روی این حقیقت ببندی و آن را نادیده بگیری بنابراین بین تو و همه پدیده های دیگر ویژگی مشترک وجود دارد یکی از تمرین های معنوی بسیار نیرومند تعمل و مراقبه پیرامون فناپذیری صورت فیزیکی است. این همان گفته پرمغز موتو قبلا تموتوست بمیرید پیش از که بمیرید به جرفای این حقیقت برو صورت فیزیکی تو محو می شود و اثری از آن به جا نمی ماند آنگاه لحظهای میرسد که همهٔ صورتهای ذهنی و افکار تو نیز می با وجود این تو هنوز هستی همان ذات الهی که ذات توست کاملا بیدار و هوشیار. هر آنچه واقعی است هرگز نمی‌میرد، فقط نامها صورتها و توهمات از بین میروند شناخت این بعد فناناپذیر و نامی را ذات حقیقی تو وجه دیگر شفقت است در سطح امیقتر از تجربه و احساس به تعبیر ابن عربی عالم خیال خلاق نه تنها نامیرایی خود را بلکه به واسطه درک نامیرایی خود نامیرایی همه چیز و همه کس را نیز درک می‌کنی در سطح صورتها تو در میرایی و ناپایداری با همه چیز سهیم هستی در سطح هستی یا وجود در ساحت خدا سهم تو و آنها در جاودانگی و درخشش حیات ابدی است اینها دو جنبه شفقتند در شفقت احساس بظاهر متفاوت غم و شادی به هم می و به آرامشی جرف بدل میشوند این آرامش سکون و سکینه است که خداوند بر دلها حاکم می کند. این آرامش بزرگترین موهبت زندگی است و نیروی عظیم از شفا و استحاله در خود دارد اما شفقت عقیقی چنان که من آن را توصیف کردم بسیار کمیاب است احساس همدردی با کسی که رنج میبرد به درجه بالا از آگاهی نیازمند است اما این همدردی فقط یک روی شفقت است شفقت حقیقی بالاتر از همدردی و همدلی معمولی است شفقت تحقق نمییابد مگر آنکه غم در وجد هستی ذوب شود وجدی که فراسوی صورت هاست وجد تجربه حیات طیبه و جاودانی سفر به دیگر سو من نمی توانم مرگ بدن را بپذیرم مطمئنم که می توانیم به بیمرگی بدنی نیز برسیم ما مرگ را باور کردیم به همین دلیل است که بدنمان می میرد بدن تو به آن دلیل نمی میرد که تو به مرگ باور داری اصلا بدن تو وجود دارد یا ظاهرم وجود دارد زیرا تو مرگ را باور کردی مرگ و بدن روی یک سکند سکه توهم این توهم را نفس می آفریند. نفسی که ذات حیات را تجربه نکرده است و خود را جدای از خدا و مدام در معرض تهدید می بیند. به همین دلیل است که نفس به تو القا می کند که تو همین بدن هستی. مرکبی که هم در معرض تهدید است. این تصور از خودت که بدنی شکننده هستی روزی به دنیا آمده ای و چند سباهی دیگر خواهی مرد وهمی بیش نیست بدن و مرگ دو روی یک توهمند تو نمی توانی یکی از این دو را بدون دیگری داشته باشی هر کجا که توهم بدن را داری توهم مرگ هم با آن هست هر کجا که توهم مرگ را داری توهم بدن هم با آن هست تو می خواهی یک روی این سکه توهم را یعنی بدن را داشته باشی و روی دیگر سکه را یعنی مرگ را نداشته باشی غیر ممکن است یا سکه را با هر دو رویش نگه می داری و یا اینکه سکه را با هر دو رویش دور میاندازی با وجود این نمی توانی از بدن خیش فرار کنی و نباید هم این کار را بکنی بدن فهم غلط تو از حقیقت خیش است اما حقیقت تو جایی در همین وهم و خیال نهفته است. نه بیرون از آن، بنابراین بدن تو تنها سرنخ تو برای رسیدن به حقیقت خیش است. اگر فرشته ای را ببینی وان را با یک مجسمه سنگی اشتباه بگیری تمامی آنچه که باید انجام بدهی این است که نگاه خود را میزان کنی و به آن مجسمه سنگی دقیقتر نگاه کنی. نه اینکه نگاه خیش را به نقطه دیگر بدوزی و در جایی دیگر به دنبال فرشته بگردی. اگر نگاه خود را میزان کنی متوجه میشوی که اصلا مجسمی سنگی وجود نداشته است. اگر باور من به مرگ بدن را می سازد پس چرا حیوانات بدن دارند؟ حیوان نه نفسانیت دارد و نه باوری به مرگ. با وجود این حیوان می میرد. یا به نظر میرسد که میمیرد. این نقطه را به یاد داشته باش که تصور تو از جهان انعکاس سطح آگاهی توست. به تعبیر مولانا لطف شیر و انگبین عکس دل است. یا در جای دیگر میگوید ای برادر تو همه اندیشه ای. تو از جهان جدا نیستی و در زم جهانی عینی بیرون از تو وجود ندارد. در هر لحظه آگاهی تو جهانی را می آفریند که تو در آن ساکن هستی ویتگنشتاین میگوید ما از خلال زبانمان به جهان نگاه میکنیم منظور او از زبان آگاهی است با تغییر آگاهی ما جهانی که در آن ساکنیم نیز جهانی دیگر می شود یکی از بزرگترین دستاوردهای نظری فیزیک جدید فهم اتحاد بین شاهد و مشهود است کسی که مشغول انجام آزمایش است یعنی شاهد نمیتواند از پدیده مورد مشاهده خود جدا بماند بنابراین تغییر در شیوه نگاه به آن پدیده باعث می شود که آن پدیده دیگرگونه جل کند. اگر در سطحی عمیقتر از وجود خود باور کرده باشی که از آدمها و پدیده های دیگر جدا هستی؟ آنگاه مشاهده می که این باور تو در همه زوایای زندگی تو انعکاس یابد و نیز این نکته را در میابی که تصورات تو در زمینه های گناگون زاده ترسند. تو ساکن جهان مرگ و بدنهایی می شوی که با هم می جنگند، را میکشند و یکدیگر را می, یک را می بلند. هیچ چیز همانی نیست که به نظر میرسد. جهانی را که از خلال ذهن نفسانی خیش میبینی جایی است بسیار ناقص حتی در ریست از ها. اما هر را که تصور می‌کنی فقط یک نشانه است مانند تصویرهایی که در خواب میبینی. به همین شیوه است که آگاهی تو رقص انرژی مولکولی جهان را تفسیر می‌کند و واکنش نشان میدهد. این انرژی همان ماده خام واقعیت به فیزیکی است تو این انرژی را در چارچوب بدنها تولد و مرگ و یا تنازع بقا مشاهده می‌کنی تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی یعنی جهانهای گوناگونی وجود دارد همه این جهان‌ها از دل کیفیت آگاهی فرد اندیشنده بیرون می‌آید بنابر این ما در جهانی زندگی می‌کنیم که با تفسیر خود آفریده ایم. به همین دلیل همه ی ما در یک جهان زندگی نمی کنیم. هر موجودی نقطه مرکزی آگاهی است گرچه همه این جهان ها هم بسته و به هم مربوطند. ما جهان یک آدم را داریم جهان یک مورچه را جهان یک دلفین را و غیره موجودات بیشمارند موجوداتی که فرکانس آگاهیشان با فرکانس آگاهی تو فرق می کند. و تو حتی از وجودشان نیز آگاه نیستی. آنها نیز از وجود تو آگاه نیستند. عارفان که وحدت بنیادی خود با یکدیگر و با همه هستی را تجربه کردهاند، همه شهروند یک جهانند، جهانی که در دید تو بهشجلبه می می‌کند. با وجود این همه جهانها هم بستند و در نهایت یکیند. بخش عمده جهان جمعی ما آدمها، زاده سطحی از آگاهی ماست که آن را ذهن مینامیم. حتی در دل این جهان جمعی نیز تفاوتهای بیشماری هست. خرد جهان ها به تصور تصور کنندگان و آفرینندگان جهان های مجازی تکی دارند. چون همه جهان‌ها ربطی تنگاتنگ به هم دارند، در نتیجه وقتی آگاهی جمعی انسان دگرگون می شود، این دگرگونی، در آب و گیاه و حیوان و پرنده نیز منعکس می شود به همین دلیل این عبارت کتاب مقدس را می تحقق بخشید روزگاری خواهد آمد که شیر و بره دوستانه در کنار هم زندگی کنند این جمله به امکان برقراری مناسباتی کاملا متفاوت اشاره دارد دنیا آنچنان که اکنون به نظر ما میرسد انعکاس ذهن نفسانی ماست ترس نتیجه اجتناب ناپذیر پندار نفسانی است دنیایی است که توسط ترس اداره می شود همانطور که تصویرهای یک رؤیا نشانهای حالتی درونی یا احساسات شخصند واقعیت جمعی ما نیز نشانه سمبولیک ترس و لایه های منفییاتی است که در روان جمعی بشر تلمبار شده است ما از جهان خود جدا نیستیم بنابراین اگر اکثریت آدمها از وهم و پندار رها شوند، این دگرگونی درونی روی همه چیز و همه کس اثر خواهد گذاشت. آنگاه تو دقیقاً ساکن جهانی کاملاً متفاوت خواهی شد. این دگرگونی تحولی در آگاهی سیارهی خواهد بود. یکی از استادان طریقت زن گفته است، سرانجام روزی فرا خواهد رسید که هر درختی و هر ساغه علفی، به شدگی رسیده است بنابرای گفته قدیس پل همه مخلوقات در انتظار شکوفایی آگاهی انسان هستند منظور او این است که همه پدیده های جهان در انتظارند تا صورت زیبای خداوند را در آینه بیزنگار دل آدمی مشاهده کنند آنها خداوند را فقط در آینه معرفت اللهی بشر مشاهده خواهند کرد بنابراین جهان در انتظار توست، جهان در انتظار خداست، جهان بیتاب توست، جهان بیتاب خداست. آنچه قرار است به دنیا بیاید آگاهی تازه است و با این آگاهی تازه جهانی تازه به دنیا می‌آید. در کتاب مقدس می‌خوانیم آنگاه آسمانی تازه دیدم و زمینی تازه زیرا آسمان کهنه و زمین کهنه. به تدریج از میان رفته بودند اما علت و معلول را با هم قاطی نکن وظیفه نخستین تو آن نیز که جهانی تازه بیافرینی تا رأسگار شوی. وظیفه نخستین تو آن است که از خواب یکی انگاری خود با صورت خیش بیدار شوی. آنگاه دیگر وابسته دنیا نخواهی بود وابسته این سطح از آگاهی بدین سان می توانی ریشه های خیش را در ذات نامتجلی هستی احساس کنی و خود را از صورتها و شکلها و وضعیتها ها برهانی. البته هنوز می توانی از لذت های گذرای این دنیا بهره مند شوی اما دیگر از فقدان آنها در هراس نخواهی بود. بنابراین دیگر نیازی نیست که به چیزی بچسبی. گرچه از لذتهای مادی بهره‌مند میشوی اما هریس نیستی حالا دیگر با حقیقتی بینهایت بزرگتر از لذت روبرو ای، بزرگتر از همه آن چیزهایی که در جهان صورتها قابل تصور است به عبارتی دیگر محتاج دنیا نیستی دیگر حتی نیازی به آن نداری که دنیا را متفاوت با آنچه که اکنون هست ببینی فقط در این ساعت است که می توانی واقعا کمک کنی تا دنیایی بهتر آفریده شود دنیایی که در دیگر سوی این دنیای صورتها و وضعیت هاست. فقط در این ساعت است که می میتوانی شفقت حقیقی نسبت به خلق را احساس کنی و مددکارشان باشی نه با جنگیدن با معلولها بلکه با ایجاد دگرگونی در علت ها. تنها کسانی که از جهان استعلا می میتوانند جهانی بهتر، خوبتر و زیباتر بیافرینند. گفتم که شفقت طبیعتی دوگانه دارد. آگاهی نسبت به میرایی و نامیرایی مشترکمان به یکدیگر، در این سطح عمیق شفقت به شفا تبدیل میشود. در این مرتبه قدرت شفادهی تو به کاری که میکنی متکی نیست. بلکه به نحوه بودن تو متکی است هر کس که با تو در ارتباط قرار بگیرد حضور تو را لمس خواهد کرد و آرامش تو بر او تأثیری عمیق خواهد گذاشت چه او خود بداند یا نداند وقتی تو کاملا آگاه شده ای و کسانی که پیرامون تو هستند رفتاری ناآگاهانه بروز میدهند تو نیازی نمی بینی که واکنشی نشان دهی بنابر تو برای رفتار ناآگاهانه آنها واقعیتی قائل نیستی. آرامش و تو معنینه تو چنان و گسترده است که هر آنچه ناآرام است را در خود گم می کند. چنان که گویی هرگز نبوده است. این حالت چرخی کنش و واکنش را می شکند. حتی حیوانات، درختان، گلها و گیاهان نیز آرامش تو را احساس خواهند کرد. و به آن پاسخ خواهند داد آنگاه زبانی می که خداوند با آن سخن می گوید. گوشی می که خداوند با آن می شنود. دستی می که خداوند با آن می بخشد و نوازش می کند هنجری می که خداوند با آن زیباترین آوازهای خود را زمزمه می کند نور جهان می شبی. آگاهی ناب می شبی. علت رنجهای دیگران را می شوی و می بری. بیان که خود رنجور شوی، نور آگاهی تو ظلمت ناآگاهی دیگران را میزداید. در زم بودن تو به دیگران می آموزد که چگونه خود را از زندان ذهن برهانند. الگوهای نا آگاهانی خود را بشناسند و غیره. نحوه بودن تو بزرگترین آموزگار دیگرگونی جهان. نحوه بودن تو بزرگترین آموزگار دیگرگونی جهان است آنچه هستی همباره مهمتر است از آنچه میگویی آنچه هستی حتی از آنچه میکنی نیز مهمتر است علاوه بر این شناخت برتری بودن و عمل در سطح علتها مانع از آن نمیشود که دست به عمل در سطح معلولها نیز بزنی برنجهایی که میبینی التیام ببخشی اگر گرسنی از تو نان بخواهد و تو نان داشته باشی، به اون نان خواهی داد. اما هنگامی که نان خود را به او می دهی، آنچه که واقعا برایت مهم است، سهیم شدن حضور خود با اوست. نان بهانه است برای سهیم شدن حضور تو، اینجاست که شفا تحقق می پذیرت. در لحظه ای که نه بخشنده نان می ماند و نه گرسنه که نان را می گیرت. اما اصلا نباید گرسنه و گرسنگی وجود داشته باشد چگونه ممکن است جهانی بهتر بسازیم بدون آنکه ابتدا از شر گرسنگی و خشونت رها شده باشیم همه شرها و شرارتها معلول ناآگاهیاند تو می توانی از آثار ناآگاهی بکاهی اما نمیتوانی آنها را کاملا از بین ببری مگر آنکه ابتدا علت را از میان برداشته باشی آثار ناآگاهی یعنی شرها و شرارتها به پشه ها میمانند، ناآگاهی به مرداب. می توانی پشه ها را مدام بکشی اما نمی توانی از شر پشه ها خلاص شوی مگر ابتدا مرداب را به خشکانی. دگرگونی از درون آغاز می شود از بیرون. اگر احساس می کنی ندایی تو را فرام میخواند تا از آلام انسانها بکاهی، به این ندا پاسخ مثبت بده اما به یاد داشته باش که اگر همه توجه خود را به بیرون معطوف کنی سرانجام ملول و معیوس خواهی بود اگر در آگاهی بشر استحاله‌ای رخ ندهد عالم بشر را پایانی نخواهد بود بنابراین این شفقت تو نباید یک بودی باشد باید بین احساس همدردی با درد دیگران و تمایل به کمک به آنها از یک سو و شناخت عمیق تو از حقیقت جاودانه حیات تعادلی برقرار باشد در ضمن از یاد نبر که همه دردها و رنجها سرشتی از وهم دارند آنگاه بگذار زلال آرامش تو جاری شود و همه اعمال تو را سیراب کند بدینسان سان همزمان هم به معلول‌ها پرداخته‌ای و هم به علتها، همانطور که نمی توانی با تاریکی بجنگی جنگی، با ناآگاهی نیز نمی توانی به جنگی. اگر این کار را بکنی، قطب مخالف را تقبیت کردی و ریشه آن را امیغتر. بدینسان: تو هم با یکی از قطب ها همزاد خواهی شد و یک دشمن خواهی آفرید. خود تو هم به درگی ناآگاهی خواهی افتاد. برای محو کردن ناآگاهی و زدودن تاریکی، باید آگاهی را داد. و چراغی برافروخت. اگر نمی توانی آگاهی را اشای بدهی اگر نمی توانی چراغی برافروزی، حداقل شیوه مقاومت امفعالی فعال را پیش بگیر اما مطمئن شو که در درون خیش دیوار مقاومتی نفرتی خشمی ذهنیت ها و احساسات منفی دیگر را برپا نکرده ای مسیح می گفت دشمن خود را دوست بدار معنای سخن او این بود، دشمنی نداشته باش. وقتی به معلول ها میپردازی به سادگی خود را در آنها گم می کنی. بسیار هوشیار باش و حضوری پر رنگ و نیرومن داشته باش. علتها باید مرکز توجه تو باشند به دیگران درس روشنی و رهایی بده. بگذار این هدف تو باشد. آرامش تو بهترین هدیه ای است، که می توانی به جهان ارمغان کنی.